بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام على رسول الله صلی اللہ علیه و سلم خب بسلسلی بس دست سابقی ما که درباره باره های نماز جماعت صحبت کردیم و تاثیرش در فرد و در جامعه حالا علمین سر احکامی که مربوط به نماز جماعت میشه. در نماز جماعت علمای کرام به این نظر هستند اگرچه نماز جماعت احادیث آمده سنت و بعضی علمای دیگر اکثریت به این نظر هستند که نماز جماعت واجب است میگن که نماز جماعت واجب است و انسان باید به نماز جماعت بره چرا نماز جماعت واجب است میگن که ما چندین دلیل داریم که این ثابت میگنه که نماز جماعت واجب است دلیل اول شیه است میگن که آیت قرآن است که خداوند مطال جل جلوه میگه در سوره بقره آیت 43 و اقیم و صلات و آت و زکات مع الراکعین اینجا یه ای علماء میگن که ورکعو مع الراکعین اینجا گفت و اقیم و نماز بخانین و آت و زکات, و زکات بتین ورکو مع راکوین و رکو بکنید به امرای رکو ها بناء ذعب رکو کنین, کنین امرای رکو کنندها چی مانه؟ یعنی نماز و جماعت بخونین نماز را به جماعت بخواین. بناء از اینجا چون اینجا ورکو فیله امرست و رکو بکنید بناء اینجا فیله امرست و وقتی که فعل امر شد اینجا میگن که از اینمی ما استنباط میکنیم که نماز جماعت واجب است دلیل دومی که اینا میگرند چیست میگن؟ دلیل دومی است که آیت قرآن است و سنت عملی هم است که اتا در میدان جهاد و معرکه هم نماز مسلمان ها با جماعت بخوند و ما شما اینجا و اذا کنت فیهم فاقمت لهم سلات فلتقم طائفت منهم معك، و حذرهم حضرهم و اسلحتهم فا اذا من ورائیکم یعنی ای آیت شریف است که ا سوره نساء آیه 102م سوره نساء آیه 102م این آیت شریف درباره ی است که وقتی انسان در میدان جهاد است میگه یک تایفی از اینا نماز به باز وقتی که اینا نصف کردن باز اینا میرن در صف جهاد باز گروه دیگه می نماز جماعت رو میخوان باز اونا میرن بهش به شکل همین نماز که در داخل میدان جهاد خوانده میشه در اموجع هم مسلمان ها جهاد در عین جهاد نماز به جماعت میخوانند میگن اگر نماز جماعت واجب نمی بود و ضروری نمی بود پس چرا اینجا مثلا بر مسلمان ها در معرکت در تنهایی میخوانند لیکن در اونجا هم جماعت میکنند این میگن اهمیت نماز جماعت ثابت میکنند که نماز جماعت واجب است دلیل سومی که ای علما میگیرن میگن که ما در نماز جماعت دیدیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ای بسیار تاکید میکرد تاکید چی است که در حدیث شریف است که حدیث متفق علیه سیر بخاری و مسلم روایت کردند میگن که حضرت ابوهریث هم میگه که پیغمبر صلوات الله گفت که والذی نفسی بیده میگه قسم به او ذات است قسم بس هم گفته که قسم است به که نفس ما یا زندگی ما در قدرت و در تصرف از او هست. لقد همم تو ان آمورا به حفظ میگم ما تصمیم گرفتم که بروم چوب بیارم، احمل کنم مردم که چوب جمع بکنن. باد از او بگم احمل بکنم به صلاب و نماز. فیؤذن لها باز اذان گفته شده برای نماز باز میگه من یک کسره پیغمبر سلام میگه که ما تو تصمیم گرفتیم که چی کنم امر بکنم که چوب بیارن و باز چوب وقتی کارن معمر بکنم که به نماز آزان بتن و باز وقتی که آسان داده شد میگه محکس بگیره وی فوتم که امامت بکننصبح خار و الاره باز مم ببینیم اوکسانه که بنا که نامدن و اخریق علیه هم بوی هم محتا خانه هایشانن در بودم یعنی اینجا خود یک کار رو بقا بر ای کار رو نکرد و این کار نمیکرد. و در زندگی خودی ایک کار نکرده لیکن پیغمبرستان به خاطر اینکه که مردم به اهمیت نماز جماعت بفهمانه گفت من اینطور تو اتا اتا تصمیم میگرم یعنی در که من یک کار را بکنم نمی‌کنم مخال، اما عمتی عکار هم میگم بگم که کسی که به نماز جماعت نمیاد حتی خانش در بدون یعنی ای مستحق خانه در دانش است یعنی این که گناهی کرده، این که گناهی زیبزرگ کسی نماز جماعت فقط میگن که حتی خانش جزا داشته چون پیغمبرصم اینو به خاطر چون این کارو نکرده پیغمبرصم وانه میگن و ما مسلمان ها هم حق نداریم که کارو بکنیم ولی پیغمبرصم میگه بخاطر چرا گفت میگه به خاطر ازی که اهمیت نماز جماعت بر مردم بفهمانند از این خاطر میگن که کسی که بدون عذر نماز جماعت رو تطبیق میکنه وقتی که در خانه میخونه و هیچ عذری هم نداره هیچ مشکل نداره از این خاطر خداوند نماز ازیرا قبول نمیکنه شاید نماز شبه یکی شدن است و یکی قبول شدن است شدنی که مثلا من کار کردم همین کار شد ولی آیا قبول شد از این خاطر مسلمان همیشه کارو میکنه به خاطر ازی که موارد قبول خداوند واقع شون و کسی که صدای اذان مشنوه صحتمن هم از کلام تکلیف هم نداره کلام مشکل هم نداره نماز جماعت رو به خاطر کسالت و تنبلی و بیتفاوتی ترک میکنن خداوند نماز زیر قبول نمیکنن خب در روایت دیگه هست که کس که ترک کننده نماز جماعت هست این چی میشم؟ داخل دوزخ میشن. قال مجاهد وصئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليلة لا يشهد جمعة ولا جماعة. قال هو في النار مجاهد تابين مباركة. این میگن میگن که از حضرت عبدالله ابن عباس که حضرت عبدالله ابن عباس رئیس مفسرین هست رئیس المفسرین ای را میگن و پیغمبر سم برازی دعا کرده بود که خداوند ازی علم بتن به تفسیر قرآن و در قرآن شناسی حضرت ابن عباس بسیار عبدالله ابن عباس شخصت بسیار بزرگوار بود میگه ازی پرسان کردم که یک شخصی است که یسوم نهار روز روزه میگیره یعنی قدر با تقوی هست که روز همیشه روزه داره و یقوم اللیله و شبانه هم همیشه تا صبح اقامت میکنه یعنی شب تمام شب نماز میخانن لیکن مشکلی چیست که لا یه شهد جماعتن ولا جماعتن به نمازهای جماعت و نمازهای جماعت نمیره نه در جماعت میره و نه در جماعت میره چرا ولی اصلا من مشکل دارم ولی اصلا این مشکل مثلا شیطان غلبه میکنه بر انسان صد قسم در دلش گفم میپرده که این مانه رفتنش به جماعت جماعت دیگه عزت ابن عباس چی گفت قال هو و فنار گفت ای داتش دوزخ هست با وجود اینکه که روز روزه میگیرن و شب هم شب نماز میخونن گفت ای داتش دوزخ هست با دوزخ میرن گفت با دوزخ میرن چرا؟ وقال معنى معنى الحديث ان لا يشغل الجماعه او الجمعه الرغبهن انها واستخفافا بحقها وترحولا بها خاطر از میگه نماز جمعه و جماعت نمیرون با نماز جماعت اشتراک نمی که به اون کدم علاقمندی نداره این نماز جمعه چیز بلادرنگ فقط تو شلست بیا جماعت جماعت کیف پس خینم می خانم اون در خانه خواندم دیگه همین قسم میگن این به تفاوت است و استخفافا بحقها و فقط که دیگه دینی چیزی نیست جماعت جماعت تمام شما پشت جماعت گرفتین لازم کسن دلیل میگه یعنی استخف ب حق ها میگنه می این میگه استخف به حقش کرده ها و طعنه اونها به تفاوت است چیزی کدوم ارزش نداره هاخرت کردن در خانه چی مشکل دار شدن اصلا از این خاطر میگه وقتی که اینی کنه میگه حضرت عبد الله ابن عباس میگه این نفر ولو که روز تمام روز روزه گرفته باشه ولو که شب تمام شب عبادت بکنه و ذکر بکنه و نماز بخونه و همه کارا بکنه لکن تارک جماعت است میگه اینا چی میشن اینا خداوند میگه در دوزخ میفرند این رئیس مفسرین ایجا پا گفتن و صحابی مبارک صحابی جلیل عزت عبد الله بن عباس شما میفهمید که چه شخصیتی بود ایناله بخ... این به برای بسیاری کساس ایناله نماز جماعت چی میشه؟ شیطان شیطانت از هر کس هم مطابق مزاجش پیش می مثلا یک کس را میترسونه شیطان که ولی اگر تو در مسجد بری بعد تو فلانی مصیبت نه. او برادر عزیز با خدا مصیبت را که خداوند بر انسان نوشته کرده اون انسان تغییر دادنمیتونه اگر یک نفر مثلا بخواهی برادم یک بسیبت نوشته شده باشنه بالاو که در دا مزید داری در دا خانه اتنه. اگر دوز بخواهی تا را دوزی بکنه یا تا را بکنه یا دوز بخوای تا را از بین ببرن یا مثلا یک کس بخواهی تا را بکشن فقط امیرهای مزید ازیاده لقد امیرای مسجد و اونم با بصری کسری دیگه که نزد مسجد میرے سنائت مثلا در مسافت میدان هوایی کی طرفش حرکت سوی طرفش میدان هوایی سوی طرفش فرق و قت استونه یک تجارت گرفتن و احتتاق کردن و هم پیسہ شگتن هم خودش کشتن اینال بصری که میگه والا من به مسجد برم، به نماز برم، ولی میشه کلش وسوسه های شیطانی است که بصری وقتها انسان هست. از اون موانع میشه خب انسان میتونه در بعضی اوقاتی که واقعا بسیار وقت خطر باشه در وقتی نشه نماز پیشین نماز دی نماز شام، نماز خفتان، نماز صبح بیچاری وقتایی هست که انسان چیز می یا مثلا اگر انسان میگه والا اگر من تنها نماز جماعت بروم، میشه چهار پنج نفر یک جای برن به نماز جماعت، کسارشان حمله نکنن. باقرض ما بیچاری کسار اینا میتونن نماز بدن. ولی شیطان وسوسه می کنه بعد تا گلاتو به مسجد رفتی انکارش. بعد تو با مسجد رفتی دو زامد خانه، تو بعد تو به مسجد رفتی این کارو کردی، شیطان همیشه انسان وسوسه هم می کنه. بعضی کساست بر شیطان وسوسه می کنه میگه والا ما که این نفر خیر هستم خوشم نمیه حال تو که از خیر هستی قار هستی سر از, از یا سر خدا وقتی که تو که از نفر قار یا خفه هستی او رو تو میکنی تو به خاطر بخاطره مذید خانه شخصی کسی نیست خانه خداوند است. هزی خاطر و آن المساجد الله فلا تلو ما الله احدا. مسجد خاص به خاطر خداوند است. تو امجد بری ارتباط تا دا دامجد به خاطر خداوند بکن. نه به خاطر زیگوالا یا فلانی مرا خوش می‌یابد یا فلانی بعد می‌آید. در حالی که یک مسلمان هیچ وقت قلبش مسلمان بعدش نمی‌آید. یک نفر پانز وقت نماز جماعت میای مسلمان از دیندار اسیمان داره چرا انسان رو بعدش به هیچ پدمنه اصلا مسلمان باید قلب پاک داشته باشه و با اگر گیریم باز هم بر تو گفتم ضرر رسونده که خوشش میاد نماز خاطر از این نماز جماعت تو حق نداری ترک کنی بعضی که اساس میگه والله من برای سه یکمیش نماز میخونم باشه می حلال داره و مشی قضایش پاکه والا اگر احیانا من نماز جماعت یمی بود که ما باید به شرط یک نفر نماز بخونیم که او کاملا معصوم باشه و پاک باشه هیچ نماز جماعت فرض نمیشود به خاطر از اینکه معصوم دیگه کی هست هیچ کس معصوم نیست کلاگی گناه میکنه کلاگی اشتباه میکنه کلاگی غلطی میکنه کل ما گناگار هستین و در کتابای فقه هماشو. ما شما میخونیم میگه که صلی خلق و کل کل بر و فاجرن یکسن فی ما اجرو عمل است با اولی سید بسم الله خان از وردک بود استاد ما بود یک سری می اومد به فساله من نماز بود میشه نمازین فاخ یا فاجر است یا فاسق است میونه که تماماً فقط حار فاجر و فاسق هر کسی که مشکل نظر نما پس پشت هر کس بخوان و تو چیز در داری که تو از دقای قاعد پشت مردم جو... چیز که همین زیاد پشت مردم گرد و گرد زدن اگر نیگف مثلا من آجی صاحب وقتی درباره فکر میکنم کنم همین خوب آدم است یا خراب آدم است من ایوای خودم فکر میکنم کنم پیش خود سعی می کنم که چرا خودم گناهکار هستم و بدبخت هستم و خدا امیدوارم که بچی سختی ها در روز قیامت متلاشم خدای من را ببخشی کنه اما وقتی هیچ نوبت نمی ریزه که من به خیلین در مورد آجی صاحب بزنم که خوب آدم است یا خراب آدم است خرابیهای خود مسلمان حق... حقیقتی است که بدیهای خودش ایراد از فکر کردن درباره دیگرها ها مانی شود من وقتی خودم می بینم در وضعیت مزید... ایوا طرف ایمان فکر کنم دارم مزید گناهای خدا باید میارم توبه هم می ایک کنم وقتی که گناهای های خدا در نظر بگیم اهمی آدم دیگر اهمی آلم بر من بیخیم ملایکه ها بالون بشن چون گناه های ذرا کلش نمی من نمیفهمم اما گناه های خدا کلش میفهمم که من چی گناه ها کردم من چقدر خاط از شدم اگر خداوند بر من نباشه در روز قیامت چی حال داشته باشم ما خود خدا هرکس خدا بسیار خوب میشناسه وقتی که انسان گناه های خود در نظر بگیره هیچ کس از از مکلینمال من یک نفرم بدتر فکر نمی کرد. فکر میگم بدترین و خراب ترین و شما گناهکارترین شما کلشان من هستم دیگه من خود تو را بعد میگم بعضی کسانی یکی که که امام است پشت سر نماز می خوانم خلاص موضوع گناه ها و بدی های خود اصلاحو او که از خودش یقه کسرا پرسون که میفت سایه ما می به نفر نماز می خونیم قفای ما مثل کماندان لشکر ور دو است دور ده جای عسكر از نفر 50 نفر عسكر است یک کماندان دارن بر شان کوماندا میدان خوب ادم بوګ خراب بود تو مقصد میری اکرېټر میکنه ټول <تصفح> را مو راځي قانون سره یاد مثل دريوار ورز د موټر ور دريوار خوب ادم سي خراب ادم سي د موټر بالا شي د فروجګار رسیدي تاسو جماعت ته ځهنی تقوا کردی سجده کړی توبه کړی خو څنګه اینه خداون خو تر ورځې قیامت پرستان نه وکړي چې ام خوب ادم بود یا خراب ادم بود تاسو تو ته خود خوب آدم بود یا خراب ادم تاسو جماعت راغلی یا نه راغلی دا ورسې ما فلانی مولوی صاحب وو توګو فلانی یوټیوب وو فلانی لږ شاملش کشوال بود فلانی بچم لانگیش ململ بود و خوشم ناومد فلانی نفر بچم غروتای خدا بیخی تراش کرده بود خوشم ناومد قواریشو فلانی نفر شده شیطان کوشش واسواس میپستا پس انسان در مسجد رفت از این خاطر نباید به وسوسه های شیطانی خود از چیز کنه یا بیچاری کسایی که میگن تو بسیار متقوا هستی با تقوا همین که انسان فکر کنه که والله بسیار خوب هستیم نسبت به عالم کردن این میخود شکی از خاصیت های شیطانی است هیچ کسی مسلمان هیچ،, هیچ کدام بار من وقتی که خودکت یک جوان چنده من فلا این از مکده پیش خداون بسیار خوب است بخاطرتی که سن انسان زیاد باشه با ما اندازه گناهش هم زیادتر می باشه او سنش خورده است انروز با ما اندازه گناه نکردن او پاک است و قلبش خوب است پس انسان مسلمان همیشه از خود کاره هیچ کسا از را تبکر سیده چیم مگفت از را تبکر یا مگفت کاش که یک توتا سنگ نبودم کاش یک توتا سنگ نبودم مرد یک دیوال مزید میماندن که در روز قیامت از پیش من پرسام کاش که من یک شاخ درخت میبودم کاش من خوب می بودم که ق... خدا در حال که گناه نشون اوکا صدیقش رو میفهمم که اوکا با شخصیت عالی بود یار پیغمبر هم دغار بود خداوند مطلقاً خداوند در مورد اوکا صدیق میگه که پیغمبرستم در قرآن ان الله معنا خدا امرای ماست خدا تک خدا دفع دفع دفع. کی کی امر امرای پیغمبرساز خداوند امرای عزیز خدا ان الله معالم حسین خداوند امرای نیکوکار است بنا اینج پیغمبرستم که از حضرت صدیق که خداوند سر از اینا رحمت خدا نازل میکنه ولی با وجود از اول صدیق با تواضع و خوشویی که داره میرم میم خدا کاش که من تو تا سنگ میبودم که من را در یک دیوار مسجد میموندن و در روز قیامت از پیش ما سوال نمیشه ولی تو میگن ولما بسیار با تقواستم ما بسیار شخصیت هستم ما بسیار بزرگوار هستم ما بسیار فلانی است ما پر فلان نماز نمیخوام پر فلان نماز نمیخوام عین تو خودت شیطان چرا که شیطان گفت انا خیر منم شیطان عبادت میکرد طاعت میکرد خودش جن بود شیطان جن بود لکن عزیز گذیا طاعت میکرد میگاد میگاد میگاد عزیز گذیا عبادت میکرد میگاد خدا کشیا قرار در صف ملائکه هی <ملایکا> hey, شیطان چی میگینه صف ملائکه من <ملایکا> ابي زیار عبادت میگنم ما هم باید در صف ملائکه باشم خداوند گفت خب خیر خو، باش من امتحان که معلوم شد که تو شیطان هستی اینو یک امتحان بکن سجا کنه نه احترام کن با آدم علیه السلام کل ملائکه گفتن خب خدایان تو گفتی که احترام کن این ما به می آدمه که از خاک پیدا شده این مثل آدم هست مونده نشده خوب هست جان جان است کل ملائکه سر برای به احترام کردن شیطان گفت تو گفت نه ما به چون خاکی من ما برای من ما ما مسخ آتش پیدا شد از خاک پیدا شده خاک چی خداوندا مادر باز گفت خب خب در قلب یکس که یک ذره از تکبر باشد ما او را میگه خواهیم که یک ذره از قلب انسان تکبر باشه خداوند او از جنت محروم می سازد بس چیز را را را ما یه بسری وقتا شیطان واسواسا میکنند مست پرانیکه در خوب هستم برادر هیچ کس نبایدی فکر را بپرند مست پرانیکه در خوب هستم هیچ وقت امی شهادت ما, ما را نداریم که ما آیا جنتی هستن. بسیاری وقت‌ها از منو خدایا من خودم بسیاری خدایا اگر جنت رحمت از هست. خدای من را دوزخ نه بر دوزخ نجات بده با خدا دعا میذنم میگم خدایا را دوزخ نجات بده که از دوزخ زیاد میترسم اگر جنت بردی خوب اگر نبردی در واقع جنتم اگر باشم دم نی حالا خطا میخورم انسان بسیاری وقت وقتی گناه گناهی خداش نمی کنه یک نفره که نه سایه برو دا باستا کرده بدرون از شیشار میمنه است و قص و شیرین و ملک فرهاد است خودش چی حالا رانداخته را و چی سر اینترنت بشین چی خری بیا و کامپیوتر میشه چی جایها رو سایل میکنه و دیگه او چیزایشه تو یک واس سایت هایشه که وقتی که یک ما بسیاری وقتی سری وقتگان تا اشتبا میکنن فلشک واد میکنم که یک اززار است تو شیخ تو خادم خوبی فلشک چی میگه حال هم از بچه بود وته خب از چی کاکی بود از از من باز اهم وقت متاجه خود باشه که من خودم چقدر به گناه مبتلا هستم این و در چهست و باید دانست که تخلف از نماز جماعت در مسجد از صفت زشت منافقین است امام مسلم صاحب روایت میکنه که و ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق میگه که از نماز جماعت اختلاف نمیکنه یعنی مخالفت جماعت نمیکنه مگر منافقی که نفاقش معلوم داد باشه در زمان رسول کریم صلی الله علیه و سلام کی مخالف نماز جماعت میگشت منافقین یعنی از دیدگاه دیر مقدس اسلام کسی که مخالف نماز جماعت است مخالف رفتن به جماعت است به مسجد نمی رود جماعت نمی این منافق است و دلست منافقی نامش ثبت نیست. مرگ ها عموتراست و نه خداوند زن رحم کردن رحم کرد و پیغمبرصمه اونها در خانه خدا بخواند کلام فروار نداره اون حقوق از او است حقوق ازازیاتا سخوخ زن که اگر دفعانه خدا مخواه اما مرد اگر یک ما قزدن به نماز جماعت نره نامه که جلسه منافق صفت میشه چرا؟ اینه و ما یه تخلف عنها الا منافق معلوم النفاق دیگه رواه مسلم حدیث نمبر 654 و میگه که دیگه روز پیغمبر صلی الله و علیه و سلم در نماز مگه بعد از نماز صبح روی خود فلانی کجاست صاحب او در نماز صبح یک یک صبح خوفتن آمده نمیتونه خوفتن سیریال است خبر است، تلویزیون هست، امکانات هست، دو او صاحب نماز صبح شرخ تا دوازه بجرد، فلم سهل کنیه نگه خوب. خود دیگه نماز صبح به رفتن رفته نمیتونه دگهو دگه میگه پیغام مرس از سر که اصلا نه فرق فلانی سعی یاد سعی من مخصوص خاو سوبش بسیار گرنگه خاو چرا گرنگه خاو صبح خاطر دیگه الناس تو بواز یک بجه شب خامو خب میکنید تا یک تلویزیون شیشتا ریموت ددس شاست که باش که موسینی سابچی نشود میکنم تو باش که فلانی سابچی نشه به این تو باش که تلویزیون استاد ربونی چی در تلویزیون استاد موسینی چی صدا تلویزیون استاد گلزمان چی باش که راست نمی تلویزیون اول خوب هر کس تلویزیون داره به سری که اصلا میتوش تلویزیون فلانی یک جای کلام شیشتا خو مثلا تو استاد یک بجه دو تا اصلا نمیجوش تو نماز جماعت هم مطابق مطابق گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم که امامت پیغمبر سلم چی میگه نماز فرض خفتن خودم میخوانه بعد از ظهر نماز فرض خفتن تا که خوندی به طریق رسول کریم صلی الله علیه و سلم نماز وترت نه خوان وقتی که درس خاندی یا مطالع کردی پیش از نماز وتر سرد خمه بخصفی خون نماز رو تا که بخونی که خو کنی صبح وقت ما یک ما اصل بودیم. رفتیم در کشور اسلامی درس می‌خونیم سلفیای عرب ها بودن ما تو 12 بجه شب درس می‌خونیم تا 12:30 باش درس می‌خونیم با نماز جماعت هم رفتن یعنی فرما تو تو مسلمان دین دارم هستی نماز هم جماعت تکس مال تو کنم نماز جماعت چی میشه قضا میشه چرا خب ما تا یک بجو درس با در نماز زود زود اتاق پس تو تو اسلامی بساز. دهشت ما خواهد اسلامیش یک است. گفتم مثل طریق پیغمبر مرسامان وقتی که خوفتان چی کردی، خوفتن با ما اندازه درس تا ساعت 9 ده بجه. ده بجه استراحت, کرد. وقتی, ده بجه نونیم بجه استراحت بجه وقتی که ده بج 9می استراحت کردی، صبحی 4 خود بخواد بیدار میشی. وقتی که 4 صبح بیدار شدی، شام 400-500 بزر نخون، صبحی 200 داشت بخون، صبح، یک نیم بعد مرگا خوستن، ایوانات خوستن، تلویزیون بینید، بچه های فلم خوست، دختر های فلم خوست، جنایتگار ها خوست، شیطان های اینسی و جینی کلشان تو میداره شدید، کمی درست هم بخونه هیچ کسی رو وسوسه نمی کنه، اوای تازه، بخیصیب صبحکی وقت، بعدی که وقت نوم نیم بجا خوش کرد، صوباکی خودت چهار بجا چهار نیم بجا خوشت پورت بیدار میشی. واقعا محمود کنی چهار چهار نیم بجبه که میخیستیم صبحی که میخیستیم اوزو میکردیم میرفتیم نماز جماعتم میخونیم نیم ساعت بال از نماز صبح در مسجد درس نخوایم به اندازی دو ساعت که شب نماز بخونیم تایمه خزم ما میش شنه گنگو نسا ده بود هوای تازه بود و بیرون در پارک هم که میبرامیم کولاگ خبر قونج دست دست میکنی هوای تازه هم تنفس مگه ساعت من خوب بود در برنامه دویدیم در رقابت یک غسل میگردیم، باز درس خودم میخواین نورمال عسا ما ما هم صحت ما خوب همه چیز خداونمون هم سیمفی ما رو بغچه برامون یک تقسیمات اسلام میدن های ما خبرداریم از تقسیمات ایشونید نه متاسفونم به کسایی که از نماز صبح و نماز خفتن مخالفت میکنن اینو پای... چی میگن؟ میگن متمنافقن کی اه دیگه پیغمبر هم چی گفت؟ ان از صلوات علی المنافقین اینو گفت پیغمبرش گفت بسیار گفت پای پیغمبرش باید در زندگی خود تیز کن حال کس که درای نماز جماعت کشته شو خدایا من به خاطر رضایتی تو به نماز جماعت میرن دو آمد مرا کش چی اون کش اما اگر مرگ مدهو ده اونجا نباشه مرگ از پوشته میتونم ده خوراک روزی تون هست مرگ از تو خوردن میتونی نه اینی چی میگه که ان افقل الصلاوات علی المنافقین ثقیل نمازها بالای منافقین چی است صلاه الفجر و صلاه العشاء اینو میتونه نماز بسیار سقیل است منافقین که در رو به جماعت برن یدون نماز میساز سفیل هستند و عالم ما فیهما لاتاوهما ولو حبوا میگه اگر اینا میفهمیدن که نماز جماعت خفتان و نماز جماعت صبح چقدر ارزش دارن میگه اگر با پای رفتن نمیتونسن مثل خزنده و میگه به سینه قشقش کش کش کردن خدا میکش میکردن ولی ده نماز جماعت میرفتن ایجا به پیغمبر خداست یکبار به خداست که انسان که این بیشتر میگم ما چی بفایم من منافک استم هم گفته که علامت منافق چیست وقتی که گفت میزنه دروغ میگه وقتی که وادم میزنه مخالفت میکنه وقتی که امانت میجیش خیانت میکنه وقتی که جنگد دو میزنه یعنی چهار علامت علامت منافق است این ولی من فاویدم چهار علامت منافک کردم پس من منافق شدم خیلی فرمول است دیگه دی فرمول سراغ کس جور شد جور میشه کسی نماز خفصان صبح در جماعت <مضوع> نمیره، پیغمه سمیه که ای دو نماز سر منافق سخت است. اگر تو <مضوع> منافق <مضوع> نیستی، ایمان قویست، با وجود خدای عزوجل ایمان داری، و ایمان داری که زنده خداوند است، محیم خداوند است، و ممید میراننده خداوند است، و حدیث شریف کی پیغمبر سمی که اگر کل دنیا بخواے براتون نیکی بکنا نیکی کردن نمیتونم مگم چیزا که خدا برات نوشتا کردن و اگر کل دنیا بخواے بر تو بدی کنه بدی کردن نمیتونم مگم چیزا که خداوند براتون نوشتا کردن رفیع عقلان وجفت الصحاب اگر تو به او قران و با او حدیث و به گپای پیغمبر سمی گفته ایمان داشته باشی هیچ بر تو کلا مشکل نیست معلوم میشه کہ یہ نہیں زہر به عقیده هست وقتی که زہر عقیده بود معلوم میشه کہ ما در نماز خفتن هم و صب رفتن و نمیرم با بر خود دلیل پیدا میکنم ایچه پیغمبر سر که کی نماز سر منافقین زیاد سختی میکنه ایمانش ضعیف است پس باید یک مسلمان حقیقی خدا از صف منافق بکشه از صف منافق باید دادم خدا بکشه و با نماز جماعت و کوفتن و صبح مداومت بکنه در حدیث شریف دیگه چی میگن عزت ابی ودائر دار تعالی میگن میگن مؤمن صلاۃ فی قریه ولا فی بدو لا تقام فیهم الصلاۃ الا قد استحوذ علیهم الشیطان میگه اگر سه نفر در یک قریه هستن سه سی نفر بسیاد نیم چه نیم کساست اولا ما ساد یک دو خانگک هستیم دو فامیل هستیم یا سه فامیل هستیم یا ده فامیل هستیم مسجد نداریم چطور دو نداریم چرا نداریم نه پیغم بسیارم چه میگه اگر سه نفر بودیم در یک قریه میگه اگه سی نفر در یک قریه باشه یا در یک بادیه باشه لا تقام و فی در اونجا بر نماد آزان گفتن نمیشه و مردم بر نماز جماعت نمیرن الا قد استحوض علیه همو شیطان میگه بالای قلبهای ازنان شیطان تسلط حاصل میکنه خود تسلیم شیطان کرد فعلاییکن به جمعاعت او مردم پیم چ کن بالای شما ضرور است واجب است که چی چیکن؟ که شما جماعته ما کم بگیرین. گوشنی س ترک دنیا دغار رفتن ای در اسلام است در جماعت باشه و این نممایه پ بود من غنم القاصی است مگه گرگ در بین گسپند ها کدام یکیره زود میخورن اما گسپندگه که از رممه چه داشتن؟ یک نفر رو ببینید سبی رفتا در غار ششتر به غار چی که از وطر که دنیا کردیم مثلا بین ششتر زکر میکنم شیطان میگه ها چه خلاق مگه که نک آجل کافر میسازش آجل بیدین میسازش آجل خانه میسازش اما در جماعت اگه مثلا چل نفر است شیطان کی میگه تواش ایره گیر کنم دیتو شیطان <تصفح> هم چل نفر ټول شي هیڅ خطا کل فالتو کل دغه نفر که کل شیزه بخای شیطان هم که وینې نفرات ششان دور اورده نه میدن شانه شون چس دېګيز شیطان تیر شدام نمیتن. برم برم از کجا اورم از کجا اورم از کجا راټام نه میدن اعوذ بالله امام کوم اعوذ بسم الله الرحمن الرحیم و تواله درات پادشام روان است از شیطان می انال در این جهش اما انسان که تنها در جای شسته باشه شیطان میاد توی خراش چی دیگه ماده غارک دیگه گچاشش تیم دنیا کردیم عروسی هم نکردیم فلانی نکردیم قرارمزه چوپک چوپک شیشه شیشه شیطان میاد گوش میگه تو خوب آدم هستی دیگه خرابaden هستن دیگه, دیگه رفتن، دیگه رفتن زن زنگ گرفتن تو نگیل تو چهار خوب آدم هستی دیگه مثلا رفتن فلانی کردن بالاخره دیگه نمی نپ دیگه واسطه های شیطانی اومراشت تو رسیدی دیگه نماز نخون شیطان واسه تو رسیدی دو در مقام رسی نیست. اما ای اگر علم می داشت. من از رسول خدا که در بلندترستم. رسول خدا که تا روزی که می مرد. امون روزی که می مردم. میگه دست خدا سر شانه دو صحابی گیه چیز کده. در ایک بقلش اک صحابی بارک بود. در ایک بقلش هم صحابی دیگر. میگه پاش شانه تو کد گرسن. پایش کم کم کشم هم شد. بیفت که وقت نماد تو پیرو حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلام هستی که حتی در روزی که میمر هم بر نماز جماعت میره مرضی که میمر اون مرض هم پیرانبر صلی سلام به نماز جماعت رفت که تو کتاب‌ها رو بخونی تو پیرو امام حسین هستی که امام حسین رضی الله تعالی عنه میگه وقتی که تیرها خورده بود اونجا بود اون لحظه پرسام میکرد وقتی نماز نشه میگفتن وقت نماز است خون تا داره تارم نیت, نیت کرد نماز بخونه که باشه تا نلرم من نماز سر پا شو من نماز ترک و من میخیسم میم نیستم مر رسیدم پیغمبر نار رسید صحابه کرام یک نفر نبود که از نماز معاف شود پیغمبر یک پیغمبر نبود که گویا نه والا سر معاف شوند ها ادگاه پیغمبر هم که بلند است. از صحابه هم که بلند است. از و اصحاب پیغمبر هم که بالاتر است این نفر رسید این ای بیچاره نرسید نه شیطان چی کرده اینه وسوسه میکنه که تو رسیدی و سیدی بودی رسیدی بلاخره سعی تسلیم شیطان میشه. از این خاطر جماعت وقتی که در نماز جماعت رفتی اگر بخوایم کوشش بکنم به پای اقدر نفر بالاخره تو تو گرفتا را گرفتان پیغمبر می پاییست پای سلام که و این نمای ع و و من غم ال القی است گرگ گرگ از جمله گسپان گوسفندی که از جماعت دور مانده اوورمون رو در انسان ها هم هرکس که از جماعت دور ماده اومون رو شاطان زود سرش شک غلب آم حضرت عبدالله بن عمرسل میگه که خطبان عمرون بالجابیتی. مگه حضرت عمر را دلتان منطقه مگه اینجی بر ما خود بمیده. گفت یا ایو الناس اینی قنتو فیکم که مقام رسول الله علیه وسلم فینا؟ مگه گفتم مرزا کوف کو مردم اینی قسم مگه دینم چه صدا مقابل شماست اینی قسم مگه یادم میاد یک حضرت پیغمبر در مقابل ما استاد شد و بر ما گفت قال پیغمبر هم گفت که اوسی کن به اصحابی مگه اول پیغمبر هم گفت که من شما رو توصیه میکنم به اصحابی. اصحاب اصحاب من یاران من شاگردای ما کسایی که در مکتب من خوندن این شخصیتایی بودن که استاد وقتی که عالی بود شاگردای می باشن؟ عالی می باشن. که اگه شاگرد شاگرد کانت چند نمره بگیره؟ 100 بگیره. اگر شاگرد یک استاد 10 نفر شاگردو سفر داد و شاگرد سفر صفر نداد استاد خود صفر داده از نگاه قانون تعلیم و تربیت شاگرد که صفر گرفت اگر استاد در پاسخش از این شاگرد من صفر مگه صفر باشه شاگرد نه بر خود صفر داره. چرا که استاد برای این کوشش نگرفت بالاخره صفر اما استادی که واقع قص و زامتکش است و با اخلاص همیشه شاگردای چند بگیرن 90 95 100 یگان تا این 20 میشه اینا لتره سا اینا ل فیسدیش اونام میرم خب اینا شما فکر میکنید که صلی الله هم از کل استادا که استاد عالی بود نبود پس شاگردای دی با اینمراتش چند چند باشه 700 نفر باشه شخصیت های بزرگوار اصحاب کرام بود و اصحاب کرام کسایی بودن که خداوند متعال در شان از اونها گفته که رضی الله عنهم ورضوان عن. ما که قرآن زیموشان رو میخوانم در باری صحابه اکرام ولی اصحاب اختلاف کردند در بین خود اختلاف کردند جنگ کردند فلانی کردن فلانی کردند کل اینمی قصار رو خواندم خواندم خواندم خواندم که می قرآن رو میخواند تو باش. قرآن چی میگن؟ قرآن برمه میگه که الله و عنهم و ردوان اونا الله از اونا راضی شد و اونا از خدا راضی شد پس میش چیکار که بخیرم دوباره رو کتاب بزنم از این خاطر مهمه که در قسمت صحابه کرام رضی الله و عنهم واردوان اینجا پیامبر صصم چی میگم میگه وصیت کرد ما اوسی کن به بی اصحابی میگه گفت که اومردم من شما رو وصیت می در قسمت اصحاب من که در مقابل اصحاب ما بی ادبی او کس که در مقابل اصحاب بی ادبی میکنه خودش بی ادب است چرا بی ادب است بی ادب در مقابل قرآن است که قرآن میگه رضی الله عنه خدا واسنا راضی شده وقتی که الله راضی باشه من بی‌ادب بفهم بگم. بگم خدا راضی است من ناراضی هستم حالا دفعه تو ناراضی هستی خدا از پشش راضی است از رو رقم اصلا نگا اول من شما را به اصحاب خود ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم باز بعد از اصحاب تابین است، بعد از تابین تاب به است. بعد ازی شما در مقابل از اینا بی‌ادبی نکنید، اونا رو کلشان احترام بکنید. بنا ما مسلمان‌ها با مطابق احادیث پیامبر (ص) مطابق قرآن از ایشون اصحابی پیغمبر را دوز داریم، آل بید پیغمبر را دوز داریم، تابعین کرام را دوز داریم، تاب تاب تابین را اینا کلشان را دوست داریم. تابعی میگن او که صحابی، اون که پیغمبر رو دید و به او ایمان آورد و با ایمان فوت کردن، اون رو صحابی میگن. و او کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام را ندید، یکی از صحابه دیده و با ایمان بوده و رابی میگن و بعضی اس که این نمی تابعی رو دیده و حضرت تاب تابعی میگن دیگه فهمه سمع من الذين يقولون ام ثم الذين يلونهم ثم يفصل الكاذب او مردم باز از فکرتان ماشین سیک و وصیت های پیغمبر سم از شما ببینن که پیغمبر سم و ما یام که قرآن الهوا پیغمبر سم از ذل خود گپ نمیزد ان هو الا وحی یوحا بود که بالا پیغمبر نمید باز میگه باز از این نمی 3 قرن این نمی 3 قرن که صحابه و تابعین و تام تابینات باز گفت باز دروغ زیاد میشه قصه های دروغی زیاد میشه سر صحابی قصه دروغی بگو سر آل بیت پیلان قصه های دروغ بگو مردم به اشکال مختلف از اون متنفر بسن باید از این زیاد میشن دروغی زیاد میشن حتی یحلیف بر رجلو ولا یستحلیف به اندازه دروغ زیاد میشه که یک نفر قسَم میخره پیش دیگه مردو قسَم بده به وقت اگر یک نفر قسَم میدودم کی میبیا محکمه قسَم بخوینه میشه. باد ازو قسَم میخد اما گفت دروغ قضیهات میشه که یک نفر اون روز کشته گفت قسَم بگو سر بخود قسَم خوده می میره هستی سامد بودو چه میگن وای شاد الشاهد ولا یستشهد میگه بعضی کسایی هستن که اون روز شهادت اسو خواسته نشه شهادت میدم درو حالا پیغمبرستان میگه آگاه باشین او مسلمان ها لا یخلوان رجلون بمرعتن الا کانت تالیس هماش شیطان متوجه باشین که هیچ مرد نامحرم با یک زن نامحرم در یک جای تنانه باشن مگر سیومیشان شیطان است نه ولی من قلب پاک است نیست خانومه که ما بسیار لکس است و پروانه داره آه. اگر تو مسلمان هستی میفهمی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه اگر یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم در یک اتاق میشینن سیومی شیطان شیطانه. و اگر تو خوب آدم هم هستی، لاکن در مجلس کاتب کشیشتن، شیطان آسفا که تو گفت مید خوب آدم جان، یک قصه خوب آدم جان، یک دست بهت خوب آدم جان، ها؟ دفکایی بگو این خلاص شیطان در حقیقت داخله. پیغمبر صلی الله علیه و آله خب دیگه چی مگه پیغمبر صلی الله و حالی و سن مگه علیکم بالجماعتی بالای شما واجیب است چی؟ جماعت یعنی شما همیشه در جماعت زندگی کنید منفردانه ترک دنیا ترک مردم ترک ازدواج این کارا رو نکنید و ایاکم والفرقه از تفرقه انگیزی و جدایی, جدایی. که یکی دیگه تن تفرقه پرتین من کتازی نمیشنم کتازو نمیشنم ازی خودداری بکنیم فا اینش مع الواحد وقتی که انسان ترا بود کتازو شیطان تاکی خوب افسوس که ما گفای پیغمبر سم هر کلمش یک در درس بسیاد بزرگ است بگه در جماعت زندگی کنین تنها نباشین وقتی که تنها شیشتی کس که اتفاقا نبود تناوشیشی شیطان وقت میبرد، ها؟ اگر کدوم داره اینترنتیشی که اتفاقا چند نفر دیگر ها؟ و اگر چند نفر دیگر اینترنت تناوشی و انترنت است، یه شیطان میاد از جانش، تو اصلا میفهمی شیطان که چیکار میکنه؟ ها؟ فارمی. این دش شیطانه معالق واحد. شیطان هرچقدر چی؟ هت واحد است که انسان کی تان حاضرش؟ و هو من ال اثنای ابد مگه وقتی دو نفر بود؟ شیطان روی کده دورتر است. از این خود آدم که در سفران میره باید که یک دوست خوده. اگر میتونم دوست خودم کتش خود بگیره. من اراد بخبوحت جنتی فلیلزمل فلیلز فلیلزم جمعاتم. نیا کسی میخواه که راحت های جنته، بکنن. او برای دارم ما شما مشکل ما در افغانستانی است که گپای پیغمبر نمیش جپای شیرآقا و گلاآقا و نورآقا و قندآقا رو میشنوید این شیرآقا و قندآقا که است هر کدام از واق است شیطان وقت دور معاشره کرده تیر معاشره نکرده احادیث رسول خدا نه قرآن همینشونه ببین قرآن چی میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن؟ میگه پیغمبرستم چی میگن؟ میگه که من اراده بوح بوحه الجنت زمین جماعه اگر تو میخوای که از زیبایی ها و خوبی های جنت مست بشی پای امرای جماعت باشی خب اینا رو میبره برای ما علامت دیگه پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه بش مؤمن مسلمان بشناس میگه من سررت هو حسنت هو و ساعت هو سیئاته فذالکم المؤمن. شکر علامت اون کی هست میگه کسره که کار خوبش خوشحال ساختش و کار بدش غمگین ساختش اونم مؤمن حقیقی بسیاری به کار خوب میکنن خوشحال میشم والا شکر که به درس رفتم شکر که با جماعت رفتم شکر که امروز ده در درس اشتراک کردم شکر که این روزم در خوبی سپری شد شکر که مثلا در راه خداوند مصرف کردم شکر خدای من 2000 رو در راه خدا مصرف کردم شکر خدا که به مدرسه سهم گرفتم شکر خدا که آبسی آرسیم اسلامی بید خدایش شکر که فامیل ما مثلا گناه و تلویزون های و خاندن ها بیگرپانیست خدایش شد من سرعت خود حسنت هایش اگر کسی را که خوشحال بسازن نکیه هایش وساعت ها سیعت ها و غمگین بسازش گناه هایش اینی مؤمن است اما منافق چی عادت داره منافق میگه منافق والا که یک کوی گناه را بکنن شیطان به شما میگه که یک سر سوزن هست آلی چی کلی کلگی کارم میکنه کلگی به جماعت نمیرا قلگی میڕقصن کلگی قلم سایه میکنه قلگی خواندن میبینه قلگی قلگی گفته خیلی قلگی دوزه میره نمیرا میشه شکند شیطان انسانو گمراه میکنه از این خاطر علامت مسلمان پیش پیغمبر صلی الله یک نفر شما رو در سوال امتحان پرسان که علامت مؤمن علامت مؤمن مؤمن حقیقی که پیغمبر سلام بیان کرده چی هست؟ شما در جوابش نوشتن میکنن کسی در هاش خوشحال ساختش و بدیهایش غمگیر ساختش اینی مؤمن حقیقی است. یک دو سه نقطه دیگه خلاص خلاص سه چهار پنج سفری دیدم متیر کردم خب که باز نگوین کل صفات چیزا کاردارم جای ماهی بمونم شب تا چیز نیکنم یک اه از آداب نماز جماعت رفتن که چیست؟ است میگه از آداب جماعت رفتن یکی است که میگه ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين پیشه از که انسان با جماعت بره توبه بکنه خوب است خداوند دوست داره از گناه های خود توبه بکنه که ان توبیش الله قبول میشه با يحب المتطهرين انسان باید با بسیار طهور و پاکی بسیار پاک باشه عطر لباس خوب در جماعت رفتن این کار بسیار خوب و مستحب است دیگر گفته وقتی که در جماعت میره دستای خود با هم بسته نکنه چطور رسی نیره مسیحی را, را خودمو هم سیحی نفهم بیدم که از یک آنطور پرسان کنم دیگر گفته که باید انسان بسیار چیز کنند چرا که یابن یادم خود و دینه تکم این را کل مسجد میگه وقتی که تو رفتن به مسجد خودمو زین میسازید اصلا فکر کو تو در یک در دوت خبرستی در یک آرسی میری، در یک نحفل خبرستی. لیکن خداوند متال جل جل که یا بنی آدم خود و زینتکم انده کل مسجد. شما در وقتی که به مسجد میرین زینتتان تانا لباس خوبتر، منظمتر، عطر، پاکی، مصوات همه چیزها را اینجا نماید بکنن. دیگه از آداب ای است که مثلا انسان در مسجد وقتی که میره از کبر دوری بکنن چرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه لا من كان في قلبه مثقال ذره من كبر میگه دا جنت داخل نمیشه کسی که در قلبش یک مثقال ذره اس کبر باشه میگه پیغمبر صم گفت يا رسول ان الرجل يحب ان یکون ثوبا حسن و نحلا حسنا یعنی یک نفر میخواد لباس خوب پوشه و بوت های مقبول داشته باشه الله جمیرون يحب الجمال الجمل خداون زیباست زیبایی خوش داره اما کبر خیلی چیست؟ کبر بطر الحقی و غمت و ناز کبر میگه اینست که انسان حق بپوشاند و مردم به ارزش بگیره یعنی یک لباس کبر کدام لباس است؟ اگر یک نفر لباس خوب بپوشه بوتای خوبش بپوشه این کدام نقص نداره یعنی حدیث شریف چندون از رواه مسلم فی کتاب ال ایمان حدیث 91 کتاب مسلم ن اما، اما خداوند چرا خوش نداره که انسان لباسی را بپوشه که باز، ای لباس ایرا از حق دور بسازه. خدا مشابه به با و خارجی ها با اون دو با کافر و با یا و یا چهری خدا مشابهی به سازت با اینا وایی که مثلا وقتی که لباس پوشید دیگرهایی که لباس ضیفتر دارن او دا نظرش نبیه بکنه در نظرش نده اونا رو سرش خندی میکنه اونا رو هم از خراب سازد اینی باز بعد از دغیر از اگر انسان او خت را باشه کان مشکل ندارم اگر از آاداب رفتن و مزییتی است که اگریه کس از غضت جاابه سرمایه یکقیق هم گفت که من ع کل فومن او بمثلن اگریه کس سیر خورده باشه یا پیاز خورده باشه که خام باشه چون اونها بوی میتن فلیعتزلنا و ولعتزل مسجدنا و لیقد فی بیتی این میگه مجلس ما هم نبه و مسجد هم نره قرار ده خانه خود بشینه به خاطر ازی که دو تا یک نفر سیر یا پیاز خام خورده باشه و مردم و تکلیف بسازن چی چیسته حدیث این حدیث شریف در بخاری و مسلم روایت شده متفق علیه است خب دیگه از آداب مزیدی هست که وقتی که انسان به طرف مزید میره ندوه ولو که نماز جماعت ها میفهمه کس به شرکات دیر میشه میسیار ندوه و خطایی نکنن چرا که ابو حرای را دیاله تالان هم از پیغنبست هم روایت میکنه که ایدا اقیمت و و وقتی که نماز ایستاده شود و فالا توها میگه شما تو نهنه که تیزش داده ون با آدکوها تمشیونشما آنتو آیسته متوجهم؟ رفتار عادی و میانه بکنین و علیه که سکینه شما باید با بسیار سکون و با قربن فهم آدرکتتون فصلو چیزی که درک کردن بخوانین اگر اگر کادر کاتا گرفتی بخو، پاموفقت کن فاطم و اگر اگر کادر کات از پشتون میرن که امروکات بازور بتنهايتن عداب بکنین ای حدیث شریفان امام مسلم در کتاب مساجد دجل دوالت حدیث چهارصد و یست روایت کرده. باب 38 حدیث 602 خب دیگه وقتی که انسان داخل مسجد میره دعای مسجد رو بخونه دعای مسجد چی است که انسان بگه اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب وافتح لي ابواب این هم اومدند دیگه اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك دگہ آداب مسجد چی است آداب مسجد چی است که انسان وقتی داخل مسجد میشن با بوتای خود با صداهای بعضی کس‌ها اسم ندارن سه چهار نفر نماز میکنن دو نفر قصه کداو فکای گفته من نماز داخل میشن گپ میزنن انسان در مسجد تشویش میکنن حتی آدم داخل شدن از دیدگاه شریعت اسلامی در مسجد داخل شدن سلام دادن نیست بشی کس وقتی در نماز میگاس سلام علیکم نه در مسجد که توفیق شدی الله اللهم افتح لی باب رحمتک دعای مسجد این هست سلام در مسجد نیست کلیک در نماز است تو سلام داره میره دیگه آداب مسجدی است که آدم باید با صدای بود، های خود با تخب خود زیاد و با حرکت هایش مردم نمازش خراب نکنن از آداب مسجد است که وقت انسان داخل مسجد میشه شه در صورت که وقت ممنوع نباشه مثلا به نماز دیگر انسان می به نماز پیشین می اینی وقتا نماز خفتن می ده اینی وقتا درکات نماز تحیت رب المسجد میگن که انسان وقتی داخل مسجد میشه شه درکات نماز تحیه یا درکات نماز نفل بخونه دیگه وقتی که انسان بگه داخل میشه چی کنه خواه دیگه گفته که در صفحه اول بشینه نه در اول اگر جای داشت بود در صف اول بیشی و به طرف راست امام در صف اول به طرف راست ایسا واد زیاد دارد چرا؟ در حدیث شریف هست رواه احمد و ابو داود اینا روایت کردن که اینا الله و ملائکته یسلونه على میامن من الصفوف. الله و ملائکاش یا رحمت می و دعا میکنن ملائکه ها بچی به میامن من و به طرف راست صفوف که انسان اگر به دا داخل میشن اول در صفحای اول بشینه و به طرف راست بشینه او را پر بکنن او را اینجا بخوانن دیگه اگر انسان دو نفر بود دو تا رفیق بودن ولو که مثلا عالم نباشن باز هم اینجا تاریخی خوبی است که اگر انسان مثلا دو نفر بود یکشان پیش شود و دو نفر جماعت بکنن اگر دو نفر نفران بودی ااکان پیشست چون که سالات راجل معراجله از کامین ساتیی وقت میگه اگر یک نفر کتتی کسی دیگه نماز میخوان این نمازش بهترتر است از نمازش به تنهایی و صلات و معراجل اینه ااصل کا سالاتی معجل می اگر هم را دو نفر میخوانه بازی بهترتر است و ما اکان اکثر فهو احب احبائل الله هرقدر که تعداد زیاد باشه، با و ما اندازه با خداوند زیاد محبوب تر است ای ابو داوود و سنان, سنان عبیبی داود در دا حدیث 554 یه حدیث شریفت رو باید کردم دیگه چی می باشه به طرف راست آدم باید استاد شد به طرف چپ استاد نشد دیگه خواه آها دیگر آداب جماعت است انسان وقتی که میره بیشیاری کسا عادت دارن که به نماز جماعت وقتی که میرن قرار استاد میبشه امام در سجده هست و ایستاده استا صلوات و ایستاده چانه پیغمبر اصلا چی میگن اگه اذا جئت الى و نحن سجود وقتی شما به نماز اومدین و ما در حالت سجده هستین فاست شما هم سجده کنین در اونم لحظه که ما مگیر کین در اون لحظه و لا تعودوها شاین الى باز نماز سن حساب نکنین بلکه وقتی که وازه صاد شدی اون رکعات از اونجا حساب میشه اما باید با من ادرک رکعتا فقط ادرک الصلاه اگر یک نفر یک رکعت در جماعت بگیره مثل که کل نماز گرفته باشه دګا مګا بشيري کساس که پیش از امام صف قت میکنن انین دا رواه هست حضرت انس ابن مالک صاحب میگه میگه صلی الله بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ذاته یوم میگه روز پیغمبر سم به ما نماز تاسو فلم ما قضا صلاته وقت می نماز خوان اقبل علینا بوجهی روی خدا و طرف ماکهت گفېردم این امام وکم طلا تسبيقون بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام شما ما امام زارسم شما از ماکه د پشتر در رکوع د سجده او قیام نه بشيري کساس وقتی که امام میخیږي دروست نماز بخوان تا ته میسمی الله من حمیده شانزان افراد بیمینی کپک کپک در پشتر خدا کپک جل کردن که زود سجا کنن هنوز ربانالک الحمد برش وقت دیگی ربانالک الحمد وقتی در سجا رفتن نگه ونا بل انصراف اما وقتی کتا سلامون دور میتوند شما باید از اون کتا پیشتر نکنین این دی اره و من خلفی میگه تو سر هم شما را نگه پیغمست هم گفت من شما را میبینم دیگه از خاطر؟ انسان باید از امام کنه در چیز سفقت نکنه دیگه نماز صبح و شام فضیلتش بسیار زیاد است دیگه اگر کس در نماز خفتن میره مثل که نصف شب ای عبادت کرده و من صلح صبح فی جماعت و کس که نماز صبح در جماعت بخانه فکه این نماز صلح لیل کلهو خب مگه اگر تر خفتن بخانه مثل که تانی میشه و عبادت و اگر نماز صبح هم در جماعت انسان بخانه مثل که همی شب مکمل در عبادت باشه ای بروایت احمد, در مسند امام احمد حدیث 409 این حدیث شد نماز جماعت در گذشتن از پل سرات چی چیز داره تاثیر داره میگن که حتی کسانی که به پنج وقت به نماز وضو گرفتن و به نماز جماعت میرن حتی اینا در پل سرات رفتن از اینا و رفتن از اینا به جمعه بسیار ساده می باشن خب کسی <تصفيق> <تصفح> <سؤال> که صدای آزا را بشنبا بناماز نارن دیگه اینجا یک حدیث شریف است میگه قدرو ان غیر واحد من اصحاب نبی صلی الله علیه و میگه روایت شده از زی... بسیار از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و که گفتن من قال ومن سمع النداء فلم يوجب اگر کس اذان بشنوه و, و نماز ج... به نماز جماعت نره فلا صلاه له صلاه نماز ازو میگه درست نمیشه و قال بعض اهل العلم هذا على و والتشدید ولا رخصه لاحد في ترک الجماعه الا نگه را به خاطر تقلید و تشجید گفته که یعنی کس باید بدون نماز جماعت نماز نخوانه دیگه رخصت نیست مگر به آزار که اگر یک کس آزار داشته باشه و یکی از چیزایی که پیشتر من فراموش کردم که در قسمت دلیلی که اونا رفته بنا واجب است یکیشی ای بود که حبتاب نابینا معذور نیست یعنی اول که مانعی رفتن به نماز جماعت میشن چی است مریضی بسیار سخت است یا که مثلا بسیار طوفان باشه یا باران بسیار شدید باشه که انسان به خود یا مثلا دشمن بسیار خطرناک باشه که انسان از بین میبره به این صورت در غیر از او در alat عادی که مثلا اینجا حدیث شریف است میگه که از ربه اورسد میگه که یک شخص نابینا آمد پیش پیغمبرمم مگو پی رسول الله گو پی پیغمبر خدا لیس ایدونی یا خودونی ایل المسجد اینا بینا بود گفه پیغمبر خدا فی من کدام رهنمانه دارم که مرا تا مسجد برستانه ما و من ابینا هستم فصل رسول الله سلام علیه و آله از پیغمبر سم خواست که به عوض نماز جماعت بر ازو رخصت بده که نماز خوده در خانه خود ادا بکنه فرخص له پیغمبر سم در اول برش اجازه داد فلاما وقتی که نفر روی خود داد میخواست که بر دعا پیغمبر سم دوباره خواستش فقال له رجل هل اون النداء گفت آیا صدای اذان میشنوی قال نعم قال فعجب گفت نه, نه, نه پس باید تو اجازه ابطه اذانه بکنی از این خاطر،, خاطر کسی که صدای اذانه بشنوه و امر خداوند میشه دیگه بدون عذر باید انسان امر خداوند را نشکنانه و نماز و نماز جماعت باید بره از این خاطر میگن که کسی که بدون عذر نماز جماعت تاثیری میکنه وقتی که در خانه میخوانم و یه چوزری هم نداره هیچ مشکل نداره دیگه از این خاطر خداوند نماز ازیرا قبول نمیکنه شاید نماز شود یکی شدن از اینکه قبول شدن است شدنی که مثلا من کار کردم همین کار شد ولی آیا قبول شدن از این خاطر مسلمان همیشه کارو میکنه به خاطر ازی که موارد قبول خداوند واقع شون و کسی که صدای اذان مشنوه صحتمن همه از کلام تکلیفم نداره کلام مشکل هم نداره نماز جماعت به خاطر کسالت و تنبلی و بی باودی ترک میکنن خداوند نماز زیر قبول نمیکنن خب در روایت دیگه هست که کسی که ترک نماز جماعت هست این چی میشم؟ داخل دوزخ میشم قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النحار ويقوم الليلة لا يشهد جمعة ولا جماعة قال هو في النار مجاهد يتعبه مباركس میگن میگه از حضرت عبدالله ابن عباس که حضرت عبدالله ابن عباس رئیس مفسرین هست رئیس المفسرین میگن و پیغمبر هم برایی دعا کرده بود که خداوند برایی علم بده دیگه به تفسیر قرآن و در قرآن شناسی حضرت ابن عباس بسیار عبد الله ابن عباس شخصیت بسیار بزرگوار بود میگه از این پرسان کردند که یک شخصی است که یسوم النهار روز روزه میگیره یعنیقدر با تقوا هست که روز همیشه روزه دارن و یقوم اللیله و شبانه هم همیشه تا بری روایت شدن دیگر نمازها هم با جماعت هم سوابه و فضیلت بسیار زیاد است که الله تعالی خداوند مطال جل, جل جل هم و شما توفیق نصیب بکنم که همیشه نمازهای خدا با جماعت بخونیم